نقدیم به مادرم که هر روز دلتنگ اویم و به پدرم هر کجای هست. جین لکارد، نویسنده. چایند کارن دیران در نقش جین لکارد استندی روبر در نقش تام دوال فردی ادرسه تاکسی بگیرم انتشارات تریستس کتاب گلندی های ویترین گده سلام بله انتشارات تریستس آتوم دوال ها بله بفرم برید انتهایی راه رو نه نه حالا به حرفای من دوش بدیم به حرفت رزدی اجازه بده منم حرفا ما بزنیم ببین خب منم بریم یه وقت فکر خیل ورد نداری که من میتونم مالیات رو بخار کنم. یا برای چی من باید پرداخت کنم من تو اسکاتلند زندگی می کنم هرورف فکر کنم خودت بتونین مالیاتو بدی نه نه نه حرف نادرستی بزن ندادم ببین تو داری رو اعصابم را می ری می دونم بگم تو احمقی آره اینو دوست داری بشنوی گوش یه بار دیگه اینجا زنگ زنی و باعث ناراحتی من بشین سوار هواپیما میشم میام اونجا آره سوزن آره نه اون نویسنده فوق العاده ایه بسیار پیوسته و سرد نه محترم اگه به ما بگه که این کتابو چاپ نمیکاریم میدونید چیه هر متاسری مطلب تلفی اسفش ولی تو پای اون ورقه رو امضا نکردی بی خود فریاد نزن سرای আরে اون یکی کس نویسنده محبوب منه آره خیلی بختی که اسمش تو لیست چاپه میدونید درسته بعد از اینکه اخراجت بودی خودته آقای ریچارد بود خودته میفهمی چی میگم بود خودته نه اون, اون رفت جلقارد شما دارین چکار من ما... ما... خیلی مترسفم منظوری نداشتم داشتم بهش دست میزدم البته من منظور همینی که داشتم نگاش میکردم مثل این آدم های ولی من فوزول نیستم خب ناشر جوان اروپایی نفر اول سال واقعا که حالیه من خوشحالم که اینجا هستم اوه. شما سا کی هستی؟ جین لاکارت انتو بی پایان پدرم رو نوشتم آها، همراه من بیم برو باید جواب اینو رو الو من خیلی گرفتارم پس خلاصش میکنم. کتاب شما رو خوندم متاسفانه کار داره خیلی هم کار داره. بفرماید بشین. اما پتانسیل خوبی داره برای همین چاپشون می بهتون دو تا کتاب پیشنهاد میکنم یعنی باید خیلی دوباره نویسی کنیم. یه اسم جدیدم هم حتما لازم داره و هیچ کدوم ثروت نمیشیم اما فکر کنمم نویسنده دیم در ذات شما هست. و با اینکه خیلی دور از امروزی به نظر میرسه مام هم همین داره پیدا. برای این گریه بخ... قصد نداشتم گریه کنم اما اما آخه خیلی وقت گذشته، میدونی؟ خیلی ردم کردن و من یه تخت دارم, تخت دارم؟ از نماهایی رد صلاحیت اسمشو گذاشتم تخت این درده خب این که کاملقه ردیه مذارت میخوا من اون تو دانشگاه هم همینطوری بود هر جا میرفت زنا به گریه میفتدن یازنیس نگران بشی. نگران؟ من نه نه من نگران نیستم اصلا خیلی خوب یکم نگرانم. مشتری پیش میاد. ببخشید اما قبل از شروع کاری ویرایش چیزی لازم دارم. مثلا چای قهوه شکلات و این جور چیزا. یا می‌خوایم از الان شروع کنیم؟ باشه. باشه خوب از کجا شروع کنیم شاید احمقانه به نظر برسه ولی میتونیم از اولش شروع کنیم آره درسته آره مرده فرانسا بیجیبه ایچی؟ ایچی؟ ایچی؟ خب. امروز خوش اخلاقی من همیشه خوش اخلاقیم اصلا این چرا هستم؟ آره؟ باقیر خب اولین جمله به نظرم خیلی زیباست همین الان دارم میکنم چشمامو پستم و پرم شدم مولو با تمام احساس کجایی؟ داشتم رد میشدم گفتم برگردم بیام ببینم حاضره یا نه آره نمیدونم از زیر پاهایم احساس کردم کاغذهای های مشالی شده بگیر با... باورم نمیشه فردان تلفن میکنم. پایان خوشایند. پایان خوشایند. اندوه بی پایان پدرم چی شد پس؟ چی شد؟ میدونی این موضوع چقدر برای مهمه و من کتاب کتابم رو آواز کردی. باید گفته بودم. اولین روزی که همدیگه رو دیدیم، گفته بودم باید عوض بشی. ولی در مورد شرف‌نژادی میدونستم چه باکاره چه میدید میدی. دی جوان جواب. هی، مواظب باش. اون جایزه ناشر جوان سال منه. سوپ‌بهچری. اوه. أوه. أوه. خب مشکل تو چیه؟ تو چی هستی؟ چی؟ این همه مدت با هم روی متونه کتاب کار کردیم اون وقت تو هیچ مخصد اسم کتاب حرفی نزدی تو رو نمیشنسم ببین اسم کتابت خیلی بد بود. منم عوضش کردم. کار که شده. حالا بیا ادامه بدیم. چطور نشه برات ساده باشه؟ شاید به خاطر اینه که ما یه نویسنده نسبتا ماهره نیستم که پدر بازنده و بیکارشونو با ناتوانی در کردن جواب و دردای خودش رها کرده رفته. ببینم تو چی گفتی؟ آروم باش بگی بشین. چه خط تازیات میکنی؟ میدونی چی؟ باید روی کتاب دیگه کار بکنم و بعدش همه چی تمامه. بیا ادامه بدیم. تابستان های دوران کودکی طولانی زیگست. کودکی من اینگونه نبود مخصوصا آن تابستانی که مادرم مریض شد. آگوستین توانستم دیگر کودکان را ببینم که در گرول کوچک حرکت می کردند اما من به آنها نبودم. دیگر هرگز مادرم رو زیر نور خورشید ندیدم. مادرم مرا به فروشگاه هست با فروشی برد تا هدی تولدم را انتخاب کنم از آشنایی با شما خوشحال شد من <تصفح> از آشنایی با شما خوشحشدم. موفق باشی. اینو برای کی بنویسم؟ پیتر. آن اینجا هستم میخوام اینجایزه رو به بهتری نویسن برای اولین کارش احتمال هایان خوشایی هم جین امریک میکنم شنکسی که اینجا ایستاده یه نویسنده بایی شنکسی که میتونه بارده مکانهای بسیار تاریخ باشه اما من درچ بود نمی صنده ها ما هروز با تاریکقدر یعنی حراسی تمماشه یه گوه دررسید یا یه صحه خالی داره و هر روز با هم با درسته فصل بعد تا آخر هفته نسخه کامله بهت میرسونم واا چه عجب؟ آه. تا مثل همیشه سریع و سر وقت دوست داری غور بزن من هیچ وقت اونقدر زجابر نبودی؟ خوشحال آقای حسود خوشحال یه فصلی دیگه آره؟ بعدش یه هرگز مجبور نیستم تو رو ببینم آره برای برای بهتر به نوشتن ادامه بدی به زودی میبیرم بهت به امید چاپ کتاب فصل سی و هفت فقط این فصل رو نظر تو برای من مهم نیست دارم بهتی این فصل در شروع کتاب نمیخوری این مال عصر یخ بندانه تو نمیتونی این شری با هم حرف بذاری من به عنوان نخست نویسنی زیر سی سال اسکابلند انتخاب شدم اوه اوه اوه اوه. نه من بادخارم به همین دلیل اجازه نمیدم اسم تو زیر این کتاب احمقانه چاپ و منتشر بشه خانم. یاد اشه منو داری برو درستش کن نیکولا سعی کن آروم باشی اگه کاری کنی اشکم در بیاد به اداره مالیات اسکاتلند میگم قاضی تفریحی داری اگه قرار حرف از عدد بزنیم میشه از این سبزیجات به عنوان استاره استفاده کنیم که بفهمم این گردش مالی من امسال جلوی پای چند تا از نویسنده ها پول ریختی من رو فقط میدم به نویسندهای خوب های جوان اسکاتلندی دیگه چه فرقی میکنه یه نویسنده موفق به اندازه همه درآمد داره و من بهترین کتابارو زیر چترم دارم هارت داره از کتاب جدیدش چه خبر اصلا خبر ندارم اون میمچوسی نمیده بخونمش تا وقتی که تموم بشه ها درست اصل کتاب اولی میشه. شنیدم رفته با این انتشارات دیگه حرف زده. مککلین و مکالین با جلدای معروف قرمز. مککلین و مکالین میدونی بین با چه لقبی بهشت دادن؟ بزن و در رو. اونا ام. به درد جین لایف هارد نمی‌خارن. چه جدی میگم؟ خب باش حرف بزن ترقبش کن با تو کار کن اما کارید. خودم نمی‌خوام باش کار کنم. بعد از اینکه کتاب جدیدش رو تحویل بده، میخوام بره به یه جای خیلی دور. اه، محضر رضا کی انتشارات تریستس الان رسیده به مرز ورشکستگی قطعی. و من یه پیشنهاد دارم میدونم تو خیلی باهوشی ساکت شو اینا میخوان روی تو سرمایه گذاری کنن من به پندیمیک میدیو احتیاجی ندارم من جنلک هر تو دارم و این بار داره به اوج خودش میرسه مطمئنی چون اگه نتونه تحویل بده اون وقت من خودم لهت میکنم <تصفح> چرا حتما تحفیل می شاید گاهی مثل درد بی درمون باشه ولی وقتی می درست مثل موشکه هدایت شدم باز خوشی خیلی چهاری پنش همه یه جمعه نسخه کامله میاری؟ نسخه تکمیل نشده؟ آ من فقط می‌خواستم چک کنم. تو مطمئنی تا هفته دیگه تموم میشه؟ بیست گفتم یه فصل دیگه مونده. داری چیکار می‌کنی؟ هیچی. داری کیک می‌پزی؟ بدره چک می‌زه‌ وقتی نمین نیست چک می‌زه‌ میشه خودتو کنترل کنی هر دفعه اشی در درمیاره این دفعه این صفقه آخرش خیلی واچه به آخر کتاب با من حرف نزن کار خودتو بکن باشه مقانه هست لاسی جن به سرون داشت زندگی خیلی بدی داشته که اونطوری نوشته چی داری میگی؟ خب صفحه تنهایی اون درون گرایی بیپایان ذهنی که با افکار مخشوشش آلوده شده نویسنده اینجوری زندگی میکنن بدون مصیبت هیچ کی شاعر نمیشه بله با جیلاد پارت حرف زدیم بله ظاهرا هیچ وقت اینقدر خوشحال نبوده. کتابه چی شد تام الو هنوز اونجایی com من برای کامک بنویسنده بهت احتیاج داشتم. جین باید به حالت افسردگی اولیش نگاه اون با همین افسردگی کتاب اولشو نوشته. من خاطر فکر می‌کنم میتونم روی استعدادش. چطور می‌خوای زندگی جین دارک تو داغون کنی تا بتونه کتابشو تمام کرد این کارت واقعاً درست نیست. اینجور کارا رو تو فرانسه یادت داده آه من اونجا دورهای مختلفی رو گذروندم. خب چطوری میشه یه نفر کاملاً بد‌وقت و بی‌نواई کرد ها؟ چرا از من می‌پرسی؟ ده سال از عمرم گذاشتم رو زهن جوانا که براشون امید ایجاد کنم بچه اونا بذار کنار بارو گوشه اون دیوار وایسا لعنتی کوچولو. خیلی خواب راهش اینه که نباید فقط ناراحتش کنی باید اول یه حالت ذهنی خیلی خوبی بهش بدی این یه حالت بیچارگی خاصه و یه حالت مالی خولیایی میخوایی اندازه یه مناسب از حس جدایی و تنهایی که منبعی خلاقیت همه یه است. بسه یه چاه تقلیه برای ذهن بلوکه شده یه نویسنده ها میمونه کیتز؟ کن کیتز؟ برای اجرای نشد از شعر استفاده میکنی به نظرم با این این نقشت خیلی بدی بذار بسیار خوب، بشینید بچه ها، بشینید اون ورز ورز اون اولین رمان نویسی بود که از سیستم دیجیتالی برای نوشتنی کتابش استفاده کرد قهوه و مامانت خیلی دوست داشت میدونم مامانت کلن خیلی کیک دوست داشت همیشه برای توالادم کیک درست کرد آره یادت وقتی شیش سالت بود من رو مامانت بردیم مدباقه برش میمونا میوه گندیده به پرد کردن و یکی از اونا لیس خوردم و پام از سجا شکست او میمونای رنتی به همون یادت میاد خاره؟ خوب یادمه اینم تو کتابت هست وگه نه چیز خوشایند پایانه اسمش پایانه خوشاینده. آره شخصیت هستی با پدرش میره باقی باش ولی اون شخصیت تو نیستی و اونا میمون نیستن پنگوانن پنگوانان میبه پر کردن این فرق داره یه قصه است زندگی واقعی نیست این دوتا با هم فرق تا چطور بگم نه نهلتی یه کتاب جدید می نمیسی؟ دره آماده میشه آره و تامی؟ اونو تامی صده نکن اسمش توماس دواله اهل سنتروپ از جایی که لقب آفتاب تقلبی بهش دادن همچین میگی تامی انگار بچه اینجاست اینجا، سنگاری ای آدم معمولی اما میگی ای ای با اون سرت زشتو دیریختش. تو این شعر مثل اون خیلی میبینی؟ داشپول هست بازیکن تیم راگبی رنجرز. بکسریم، فراموش کن. قراره با این ناشر جدید قرارداد امضا کنم. مکی با جلدای قرمز. تامی دوست دارم، ازش خوشم میاد. پدر، واقعاً هیچ کس کتاب تو رو نخواست، مگنا، اون از اول بهت ایمان داشت. نه، اون به کتابم ایمان داشت. میدونی که هستی با اون نواز کرد؟ واقعا؟ آره؟ اسمش خوب بود؟ نکته این نیست خب اسم هستی کتابه چی بود؟ هیچی هیچی هستم مهم نیست پیش آه به هم بگو میدونی که جور چیزها رو دوست دارم چیزایی که بقیه مردم ازش خبر ندارن کمک میکنه از کنم با حد باشه باشه میخواستم اسمشو بذارم اندوه بیپایانه پدرم محضر رضای خدا چین. چی اندوه بی پایان پدرم؟ میدونستم راجب منه میدونستم نه راجب تو نیست راجب شخصیت یکی از خودم ساختم وقتی کتاب منتشر شد همکرام یه جوری نگاه میکردن باید میدونستم من میرم سر کار تو که کتابو نخوندی تا وقتی اون کتاب لعنتی رو نخوندی اجازه ندادی از بشی فکر میکنی برای من ناراحت کننده نیست که پدر خودم کتابو باشه. حتماً میخونمش. به محصه که تونستم از شر رندو هم خلاص بشم حتما میخورمش پیدر هدف شد تمام اون یه گلدونه رودی نه را اکتر آتمی. فقط اگه دیدیم که هنلا کارت برمیگرده خبر بده شنیدم شد یعنی خیلی خوب شنیدم خیلی وقتی یه کمی قواندوه خیلی سطح دارده همه گردونیش شبی از رودی به ما همه بدبختیم تا پنج فود تا نقطه تصویر واضحی داریم از ایوای برمن تام تام تام تام تام چه این برگشت چی جنتریه بالا لعنت لعنت یازون بیا بیرون لخم عملیات لخم خیلی بهت شد شد نمیخوام نگاه کنم عالی شد آه. برای چه میزنیم از این کار خیلی لذت میبریم من کار به نظر خودشی از این من که واقعا گلدونشو آس بین نبردم Let's see you are. سمیر درست میکردم آه، نمیتونم خیلی بمونم فقط میخواستم بگم تا حالا تا الان یادم بوده چی میخواستم بگم فکر نکنم توی زهنم کلامات زیادی مونده باشه گوش کن ما هم دیگه خوب نمیشناسیم و من خیلی دوست دارم تو رو بهتر بشناسم یعنی بعد از اون چیزی که از کتابت فهمیدم من راستش همه چی رو خراب کردم دیگه حرفی نداشتم و خیلی متاسف بودم و هستم خیلی متاسفم دخترم من گفتم خب باید برای تمرین مسابقه برم پیش بچه من رفتم خیلی خوب باشه من رفتم پدر. اشکالی نداره میدونم همه این موضوع ها چقدر است پدر من اجازه دارم جز گروه مسابقه شما باشم آه آه آه فکرم برای بازی توی مسابقه یه یکم کردار باشی خواهش میکنم دلم میخواد باشه می‌خوام بشناسید. واقع؟ واقعا؟ واقعا؟ عالیه. عالیه. یه پیچیاج داریم. روری داره نشنایی از دیوونگی‌ش نشون میده. خیلی عالی میشه. خوش خوش خیلی از دکتر مکلینو رو ببخشیننیشون عادت دارن هر زمان با این نویسنده یه جدید قرارداد امضا میکنه این خیلی احساساتی میشن. این فوقالت طبیع؟ خ پس مکلین و مکالین نمیتونم باور کنم قرار کتابم با یکی از اون جلدای قرمز معروف و کلاسیک چاپش بشه فقط به خاطر جلدش نیست ولی جلدشم خیلی قششنگه من آرزو داشتم با بی اسکات کار کنم. بله ویلی نویسنده خوبیه ویلی ماس میتونید با هم کار کنی. واقعا؟ نه اینطور فیک میکنید. اون در کنار های بزرگی مثل یو این قرار گرفته و به اوج رسیده. اه، به نه اگر کافی؟ نه یعنی هر توسط یه نشره دیگه کشف شدی؟ تام. بله اون یکم تجربه کمه. اون با همه مشکل داره. حتی با ویلی هم مشکل داره. کار همه قبول نداره. اوه. آره، تام اینجوریه. بگذاریم حالا باید به قرارداد جدید فکر کنیم یه همکاری طولانی در آینده رو این کارم صد ذهنی داری ها؟ متأسفم میشه باره ببخشید یعنی منو ببخشید فقط برای یه لحظه لسداسی کجاست آه. آه. تو کی هستی و اینجا چیکار میکنی من شخصیت کتابت هستم تو نمیتونی فصل پایانیو بنویسی چون وقتی تموم شه دیگه دلیلی نداری که بتونی تامو ببینی شوفوا اخرها بيچرتو بيرچ ديوري ميجي چه این دخترم اونجا حبشی و راتب بله بله تو یه دقیقه دیگه میام بیرون چی حال متوجه نشدی؟ چیزی نمونده تا مفره فراموش کنم و با این ناشر جدید قرار قرارداد امضا کنم. و یه موضوع دیگه، من پایان خودم رو نمی‌نویسم، دارم پایان تو رو می‌نویسم و من تو نیستم. معلومه که نیستی. و کتاب اولی‌ت که اعتراف به اشتباهات و خطاها در ارتباط با پدرت کاملا تخیلی نبود. میشه دوباره بگی اسم دومش چیه؟ جین دارسی ها. این حرفا بی‌معنیه. در ذهن تو که اسم تو کنم؟ پس تو متاسفم آو. خیلی متاسفم بسیار خوب دختر جوان حالا بگو ببینم اما دستی که امضا کنی ببینم تو فقط نویسندگی را رو قبول میکنی که کار اولشون باشه اولین کار یه چیز دیگه است. چقدر جالب نه نه جالب نیست میشه بریم ببینیم جه کتابش رو تموم کرده یا نه؟ گوش کن. دوست من تو نابود میشی. اصلا مهمی نیست. خودش نخواست با ما قرار داده میزه کنه. انگیز کلید بهینستازی شخصی. عرف، اجتناب از اشخاص، مطالب و اماکن منفی و دستیابی به اهداف. باورم انجام واقعا باید سفارش بدی آه خدای من آره پیرامون مطالب بی برو بلیت همین هفته دیگه بزنید. یه دختره تو رستوران کار سابر. میکنه. صبر با رها کردن متقاب بچست صبر خود را رقم بزنید خب یه فیک مثلا مثلا می‌تونیم گربه‌شو بکشیم نمی‌دونم مثلا گربه هم داره نداره ولی می‌تونیم یکی براش بخریم بعد بکشیمش این گربه بی براش می فکر نمی کنید یکم چطوری بگم جونو نامیزه؟ آره حق با تو اون گربه نداره ولی اون به فیلم امید بسته من که آنکه نمی کنم فیلم رو خراب کنی. مفرمیم؟ اینجور که معلومه ناشر جدید هنوز ایده, ایده ای کتاب رو نخونده درست هم میدم؟ اون در از کتاب هم فیلم آه بله ناشر کودم پایل کتاب چطور عالی، خیلی عالی پیش میره از اشی چی نمیدین مگه این آقای ناشر جدید نمیتونه کمکت کنه. منظوره چه؟ اون میخواد از افتاوت استفاده اوه. کنه <تصفح> خیلی عالیه اونم یه شخصیه مثل تو <تصفح> دست فردار اینا همه میدونم اگه خودت اصرار نکرده بودی حاضر نبود مقارج کتابت رو باقت بگیره حرفی نویسندی این آقایی زمانی در سال 1998 راش کرد اون بی بیوجوده بی وشانه بیعقله که هیچ اهمیتی به تو یا به کتابت نمیده بیعقله پشت سرته جونه بده. سلام. Uh, چه که میبگی؟ آه آره یخزده است چند اضافه آورده بودم این برای دماغته به خاطر این اتفاقات رو حضر نباید تو رو میزد با این که حقت بود اون بی هوا به این کرد من معمولا با مشت اول بیروش نمیشم معمولا با مشت سوم یا با مشت چارم من چطوری مادم میشه؟ شای نفر خواستم بیارنت اینجا. تو این کار رو مگه چه اشکالی داره؟ فقط منو خجالت زدی کردی یه مرد که با مشت اول بیهور شد آه ولی اول که اینجا نیست بس... نه قدم بزنه آروم شه <تصفح> ببین چه این من باید یه موزی رو به تو بگم چیزی که قبلا هرگز بهت نگفتم پایتخت اتیبوی چیه؟ هزار و یک ساله بی اهمیت؟ این برای چیه؟ یعنی پدر تو رو... تازه تیم یه اونا شدی ها؟ الان وارد فینال شدیم درسته پس همینو خواستی بگی؟ اینو باید به هم میگفتی؟ نه نه نه نه من من میخواستم بگم پایان خوشایند آخر کتاب وقتی همه چیز بدونی درست رو برد. و اسم کتاب هیچ وقت اینه بهت کتاب کتاب خونه مثل قمنگیسترین موسیقی دیگه میدم این دیگه چی بود؟ چی؟ دورش چیکار کار ما کاری چرا؟ این مزخرفی که راجب موسیقی قمناک گفتی و مغزم و با شک در مورد قرار جدیدم پر کردی چرا به این کار بکنی؟ مگه اینکه آه میدونم چرا تو میخوایی قرارداد جدید برای کتاب جدید باهات هاته امزا کنم ایندار وقتی بیهوش بودی حرفای منو شنیدی خوب توجه کن این موضوع هرگز اتفاق نخواهد افتاد من بیهوش شده بودم شو از شو پیادشو میدونی چه تو با هم فکر میخوایی من میخوام برگردی چرا چرا باید این کار رو با خودم بکنم بهترین دوران کاری تو انتشاراتی من بود ولی حالا چی شخصیتای کتابت از من برات واقعی ترن بس دیگه. خواف خب فیلمنامه حاله چی؟ داشتم فکر میکردم هیچ وقت در مورد فیلمنامه درست حرف نزدیم. هیچ حرفی نزدیم و از اونجایی که من این کتابو نوشتم شاید من بتونم میدونیم منظورم اینه که ما باید بیشتر با هم صحبت کنیم. این فکر بدی نیست. چی؟ تو نمیتونی این کارو با کتاب. خب فکر کنم باید یوزوجی بهش حرف بزن. میدونم این قضیه از کجا می تو الان دو هفته سی یک من ننوشتی خب میخوای حرف بزنی به جای کنار اومدن با انصداد ذهنت. چند بار بگم ذهن من مشکلی نداره. الانو نمی‌رسنده میشناختم. فکر دیگه نمیتونه نویسندگی کنه ولی ولی بهش غلبه کرد. میدونی چطوری؟ چطوری؟ بدون اینکه حرف بزنه می نوشت. آره باشه حتما نیت اینه که خودتو از عادتوی روزمرگی خلاص آه. کنی تا بتونی افکارتو به شکل راحت و آزاد بیاری روی کاغذ درسته دکنم تو دوست داری اینجا بشنی و بنویسی و هیچ همیتی نمیده که دیگران چه فکری دارن آقای فقط به فیلم نام فکر میکنم در کشدار میشه اون تازه داره شروع میکنه رابطش رو با پدرش درست کنه من فقط دارم کمکش میکنم کتابش رو تموم کنم آخرش هم مثلا تشکر میکنه اول باید از شعر فیلمنامه خلاص بشیم بعد نوبت میرسه به بابا خب آیسکات ویلی مدیر اجرایی اداره بخش توسعه ما مدت یه دنباله یه فیلمنامه نویس خاص با سباهی ممتاز میگره برای یه پروژه سال آینده روش کار خب راستی شنید کتاب جین هارت پایان خوشایند و برای اقتباس انتخاب کردی خیلی هیجان‌زده شد همه هیجان‌زده شدیم اسم شرکت شما چی بود میخوام بدونم با نمایندهم صحبت کردین یا نه آره ممنون پسر توام تو سر باش باش البته که ما باش صحبت کردیم ولی اگه الان گرفته نشه بتونیم فعلا فراموشش اوه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه من حیجان زده شدم <خصف> میدونی این کار من فقط نمیشتن فیلمم از کتاب میست من خودم الان دارم روی یه داستانی کار میکنم عالیه خب ما تو تو تو تو تو تو, تو, تو میتونی این مطلب رو با معاون مدیرامل باب مطرح کنیم همینطور رئیس خرید و سرمایه گذاریمون واندا که جمعه دیگه میان اونجا شما لندن زنگی میکنی نه؟ آه, آه اکثر هم ولی میدونی من فعلا برای یه کار تو یه دفتر در شمالی شهر هستم. ممکنه مجبورشیم شما رو بکشیم به یه جای دور ولی الان داریم رو کار بعدی استیفن کار میکنیم استیفن؟ سیگان؟ سودر برگ احتمال داره سری به بزنه اگه اشکال نداشته باشه آه،, آه، البته هیچ اشکالی نداره حالا چطور؟ خوبم آشگالی؟ آره خوشیارم روی البته باید بگم یکم نگرانم چون نمیدونیم چه سوال ازمون زمون میپرسه خب بست همین سوال میپرسه درست آره آیل آوو تامی از دیدن خیلی خوشحال شده شابه بزرگی داریم آخ، یه شابه بزرگ، خیلی باظای. البته فیناله. برنده تا کیلات میره مسافرت. البته با دو لیتر رایگان. آ، خیلی اون دفعه هم موفقش. اوه، تا اونجا. ببین، میدونم تو وجهین یکم هم مشکل داری، اما مطمئنم وقتی تو اینجا ببینه خوشحال میشه. <تصفح> اون کجاست؟ خب هنوز رسیده، اما مسابقه تا ساعت شروع نمیشه. اوه، بس... <تصفح> کلی وقت داری کلی وقت چه زود ماجین تابگانتوشم تو دقیقه دیگه رسیدید آ من همین خبونه پشتی بودم کجا تاش می‌ذارین منطقه شرقی بله چش مالترسکات نظره چیه؟ حالیه آره منو من و بچه ها راجبش حرف ما تصمیم گرفتیم اون بشه کافتر تیر وقتی یه دفتار بود هر پنیی که مادرش بهش میداد مینداخت توی قلکش رو ذخیره میکند که یه روز بره مسافرات و بازی. هر جشن تولد میگفت مسافرات شهربازی مسافرات شهربازی آره. هر جشن تولد البته تو تولد هفتادیش آ یه بار مادرش بردش والپس براییه هد گشت هدیه تعول داشتهشه ولی موقع برگشت خیلی دیر کردن عصبانی شدم تا میدونی من میخواستم شام روی میز باشه وقتی میرهسم خونه خب خلاصه همون شب بود که ترکشون چردها رفتن؟ بدتر این کاری که اون شب کردم فقط همین بود ببخشید کجا داری میریم رابیت پانس من گفتم بالتر سکات مطمئنی؟ البته که مطمئنم آقا خب برد و نفرش رو ستونه ادویات مهلی هستم من نمیتونم مسئولیت سوریت تاریخ سکاتلند قبول کنم که بیشتر شبیه ملو شده تا به امروز ادامه داره این فقط یه اشتباه ساده بود خیلی خوب، فقط خواهش میکنم اجلی کن لطفا سلام، بینیلا کارت هستم اگه برام آن پیغام برزارید با تو تواسیم بیرد بچکرم میدونی برای چی دیری برگشتن؟ هریا؟ خب معلومه که میدونی چون توی کتاب نوشته شده مادرش توی والفارس افتاد و مرد و وقتی جین به خودش اومد پدرش داشت پولایی رو که برای شهر بازی جمع کرده بود از توی غلک بر می داشت بعد از اون قسم خوردم دیگه به مواد فکر نکنم حتی یک لحظه تا هرداش به نظر میرسی تو تلویزیون چند مصیبه انجام داد امکان داره آره فهمیدم تو اون نویسنده این چه چیز زنم آره واسم کتابتون چه بو خوشایند داره آها کتاب گِرَسی چه داشت درد می گریه کرد تو نریشتی واقعا به خدای من حتما تو باید یه زله بیناوی بیچاره باشی قبلا جایی ندیدنت باز بنذرم خاموش برگرد بیا من باید به اون ریستوران برسم برگرد چند سال بعد تازه متوجه شدم پولیسونو آورده بود خونه درست دو دقیقه بعد از این خونه رفت بودم دو دقیقه بعد میدونی میتونی متوجه شدم یه هیچ وقت میتونم دل اون رو به دست بیارم آره دل جینه هفت سالت ببیتونم به دست بیارم ولی اگه امشب برنده بشیم دام <تصفيق> اگه امشب برنده بشیم میخوام با هم بریم مسافرت. آره منظورم یه سفر معمولی به پاریس نیست، یه مسافرت واقعی بد برده کنم میدونم فرانسه هستی نه برده کنم قیمون بايت.. و خانم ها ممکنه لطفا پشت میزاتون بشینید و برای مسابقه فینال آماده بشید حتما اون می این بار بکرده من یه لحظی میگم باش سام رو دیم کن تنسلش کن بریش اینجا خلیفوری مراه دی. مراه دی؟ اصلا میرون مسابقه مصابقه هست میشی زود باش بری زود باش بین دو در باش خیلی متاسم باش با بیشت عبام <تصفيق> تحسوتو نیست خب راستش رو خیلی خوب دیگه کافیه مسابقه رو شروع می‌کنه خوش آمدید خانم ما و آقایون به مسابقه نهایی واترسکات تیجا تیجا سوال اول چه کسی همسر ویلیام شکسپیر بود برندگان مسابقه حقیقت که ما گربه کشت نیستیم بادتر آخرین چیزی که تا کسب که اصف کردیم دوزیدن یک گلدونه اشتباه ما همین بوده تایه دلمون ما هنسان های خوبی هستیم من بخوام همه چیزو بشوی از باز اینجا برو میخوام خوام باهات حرف بزنم این کتاب منه نه؟ به من جا به خاطر این پول خوبی بهت دادم پس حتما بخون یهو وقتی تموم نشونه هم نداری چی رو بخونی ها خب. باشه بفهمید ما ببینم خوب شد فهمیدم میتونه مثل یه بزرگستان رفتار کنی وقتی که هی بقیهش کجاست تو بارگرد اینجا دوست لالتی دروخگو کتابامو به حفاظ بده <تصال> چطور تونست این کار بکنی؟ اصلا باورم نمیشه حتی از تو خوب نظرش چه؟ چه فقط دو تا فصل اولشه پس نمیتونم نظر بدم و این حال اگه قرارنده یه نویسنده رو که پول خوب گرفته و نوشته و در اولین کتابش خوششانس بوده یه طرف بذاریم به بگم این شروع خیلی خوبیه شنیدنه این حرف از کسی که هیچ وقت صاحبه شرکت در انتشاراتی نبوده باید بگم متشکرم. تری فقط چند تا اشکال. طب... خب. حالا مثال. ببین زنفی عربانو مطرح شده بشه. یه چیزی نمیشه که فقط خودت میتونه بفهمی. یعنی ای چیزی این یه جورت هندو رو هم آموزنده. بسیار من از اون سفر به برگشتم. هیچ ملاقات یا شرکتی در کار نبود، اما بالاخره پینامه‌ی پایان خوشایند تموم شد. پینامه‌ی ویژگی اسکار تموم شد. فکر می‌کنم دیگه علاقه به ادامه قرارداد با ما رو ندشته باشه. ببین چرا حالا دیگه با تو قرارداد کتاب نمی‌بنده ولی من مطمئنم تو واقعا واقعا نمی‌خوای که اون توی زندگیش ناراحت باشه. البته که نمی‌خوام یعنی فیتش نمی‌داره مخصوص خیلی پیچیده است اینو بخون و گریه کن با بهترین آرزوها ویلی به همین دلیل شکسپیر هرگز نیویورک رو ترک نکرد بسیار خب، بچه فصل بیست و به رو بخونیدش اگر نه تنبیه میشید زود باشید الو. من فقط رفته آخر کتابو تو با عوض کرده وای تو فقط از... این کتاب تو کردی، عوض اون میخواست سر از سر جدا کنه من منظورم این نبود این از وقای انقلاب آمریکای جنوبی در قرن نوسته بود این کارون رو نابود میکنه علی باید مطمئن بشی که همینم بخوندش مگه تو نمیخوای باش قرار داد ببندی. چرا؟ رو خوب تموم کردی حالا منظوری چیه؟ منظورم اینکه کتاب ج پایان آخه چی دوست داره با دلشو شکست و از سینما خارج بشه باید همطوری کس نشون بدیم می تا فکر نمیکن اون فیلامش بیشتر از کلاتتی که بتوننم بیم کنم از شناخخت من نسبت به سینما حرف میزنه. اون هنوز خبر نداره مگه نه؟ تو هیچ میدونی این کار اونو به چه روزی میندازه؟ داغونش میکنه من یه اشتباه کردم و دیگه نتونستم جبرانش کنم اما بیدی بله، این کتاب تمام کودکی و زندگی اونه بس عوضش کن موضوع چیه؟ <تصفيق> اونو اون درک نمیتنه نه؟ من فقط یه اختباس انجام دادم لازمی نمیبینم احساساتی بشم با خاطرات کدکیشم کاری ندارم <تصفيق> میخوای یه مردم مریض رو کتک بزنی اره؟ اینجا رو بریم اوه اوه. حالا رو بگیر و خود آره یادم نمیاد اون پول تو کتاب مفجر میشه سلام جینی فیلم نمره خوندی؟ فیلم نمره خوندی؟ حالا وقتشه برای کتاب بعدی شروع بکار کنیم دیلی نمی فهمم چطور میتونی به خاطر یه پایین احمقانه به کارت لطمه میزنی نه لطم نیا, تو نمیتونی بفهم خوب اگه واسه تسلی خاطرت بشه فکر کنم تو بهتره با همون انتشارتوی کوچیک کار کنی آه. آخه من نمیتونم بفهمم برای چی اون درد و گستر رو میپرستی اخته بی پدری ما مشکلی پیشنهاد پاندمیک رو قبول کنیم. حرفمو یاداش کن. این اتفاق هیچ وقت نمی. خب پس دیگه چاره ای ندارم جز اینکه تو رو ورشکسته اعلام کنم و بگم که یه شیاطی. تو مجری جواب تو من هستی، درستو؟ بله، خب. خب ببین برو در مورد زندگیون به چیکار کنم. ای زنده خدا. به اون علاقه دادی؟ تام؟ جین سلام تام اینجیس اما الان که برگرده، اگه یکم منتظر بمونه نه فکر نمیکنم بمونم دارم برای یه مدت میرم استراحت فقط مدم اینو تحویل بدم این کتابی جدید منه تمومش کردم آخ یلم راحت شد بین خودمون باشه <تصفح> کتابای تو تنها دلیلیه که جولای نابودی اینجا گرفته ها حالا کجا بذارمش آ بزاری شوم از کارش باش. حرفش. نمی باید چکار من هم سرکن ببینم تمومش کردم تنه هم من فقط میخوام تنه هم باشم جیم گوشکان میدونم مجایی میدونم به نظر احمقانی میاد ولی داشتم تلاشم کردم کمکت کنم جیم پدرت نیگران میترین منم همینطور اون بهم گفت کجا پیدات کنم به تنها چیزی که اهمیت میدی کاریه که کتابم را شرکت لنتی تو انجام میده ها بهش رسی دیگه. جین لطفاً دارو بس کن جین من با دهات همه شهر راحت نیستم بیفهمی؟ تو کنم یه خرس دیدم جین محضرتو آره این حق اگه ایجازه بدی میرم ما قاضی چکه آهنی! لعنتی! چرا اینجا گوسفند پیدا میشه؟ گوسفندای کدامن؟ نه چانتر نداره. آخه چی بود که ما دیگه ما آره هر کجور گیر کردین زنگ بزنین ما میاییم کمکتو دیگه خسته شدم از این تا اینجا دیگه 5 کیلومتر. وقتی بیدار شدم نباید اینجا ببینمت. شب بخیر. آخ. آخه چی تو سرت میگذشت؟ درباره گوندی. نه درباره من احمق. <تصفيق> خب مرزینه که تو وقتی میویسی میری به خاطرات تاریک ذهنت. معطلی رو می‌بینی که اکثر مردم ترجیح میدن پلان کنم گفتم چرا اگه ابسوردت کنم می‌تونم کتابم رو تموم کنم واقعا که نابغه. آره اشتباه کردی معلومه که اشتباه کردی برای نوشتن لازم نیست افسورده باشی خودت افسورده می‌کنی چون مجبوری چون اگه بهش محل نظری از درون کم کم تحلیل میره چون اگه ننویسی بهتر مرده باشی منظور چیه که میگی اشتباه کردی بالاخره به کتابت رسیدی تا مرودی هم نقشه کردن که پر سر صدا بود نه دقیقا نبود آخرین فس جواب نمیده باید بازنبیسی بشه. چقدرش؟ آمه منش حال خوبه؟ نه حالا مثلا خوب نیست بازم شکلات میخوام شید اگه... راجی به حرف بزنی کمکت کنه دیر نرسیدم من فکر میکنم مشکل باشه که تو واقعا نمیدونی آخرش چطوری تموم کنی باید طبیعی باشه و با فصل قبل مرتبط باشه و اگر نه حقیقی به نظر نمیدسه او خیلی فهمیده است میخوام با درسی شروع کنم چه خوب؟ اونو نمیفهمم میفهمی؟ یعنی... اون چرا باید عاشق مردی باشه که چند بار تالا رهاش کرده و رفته اون از نظر عاطفی مشکل داره به لاز آتفی دوچار شکستایی پی در پی شده اون قلب مهربونی داره شاید کمی شرح زندگی شخصی توش داشته باشه یعنی دلیل ناتوانی ماینده است آیانده. یه جایی در طول چند هفته گذشته یه دفعه متوجه شدم که وقتی این کتاب تموم بشه من دوباره تنها افسرده میشم و یه بخش دیبونه ای از وجودم نمیخواد این اتفاق بیفته صد ذهنی من آینده ولی من ازت میخواهم تمومش کنیم خب البته که میخوای تمومش کنم برای که ازش سود به دست میاری فروختمش چی؟ من شرکت فروختم نه نیست فروخته باشه اون شرکت لنتی هویت توه اونو پس بگیر نمیتونی با من این کار رو بکنیم من الان زیر دین اخلاقی قرار گرفتم نمیتونم از زیر شونه خالی کنم اونو فروختی؟ آره برای نوشتن فصل آخر هر چقدر هم بخوای وقت داری. اینو تو قرار دادم نوشم آتوم منم با مکلین و مکالین قرار دادمیزه نکردم نتونستم سخن آخرا چرا همیشه قمنگیست در این پایان ها حقیقی تر به نظر میرسن در داستانایی که برای خودم گفتم قهرمان اصلی اون همیشه خودم بودم همیشه به دنبال پایان خوشایند خودم بودم به این صورت تمام نشد نمیتونم بقیه ی در کنار اون بگذرونم ولی بهش افتخار خواهم کرد همین کافیه خانم ها و آقایم هم جین لکات حالا کتاب جدید و صدقنسیم جدال خودشون رو امزا فقط درد و مرد کی خود شد خب درستی هم همونجایی که بهش تحلق داری تو باقیم داری با کتاب تحریفی می‌زنی. خب به نظره دکم بیرنگ نیست بیرنگ؟ کل خرش کردیم خوابیار گذاشتیم حالا بر امضا کن بله خب تو حاضری آره حاضر خب، خب، شروع میکنم توجه کنید بچه جین لاکارد البته از روش شارلوت برونته پیروی کردن و دومین نویسنده انگلیسی زبان هستن که سفینه رو طراحی کرده و ساختن سفینه سین فی نون هه <تصفح> خب تو گفته امروز از طرف پندیمیش میدیا چند نفر قراره دیگه نیچه پس اونا کجا؟ داری نگاشون میکنی اونا یه نفر رو برای شرکتشون میخوان که بهت اجازه نده از اون رو به شای افراتید قصر یه شخص با نفرز یه شخص با انزباد <تص> <آه تص> ممنونم از شما اونو خوندی؟ آره پدرش واقعا بهش بد کرد. کار بود نه نه نه نه اون آدم بدی نه ولی دختر آخر کتاب اونم میبخش های اگه فکر میکنیمون بد بوده ببینیم تو کتاب جدید چه برای سرتو نورده خب بره آقای میشه یه لحظه به امون بخ آله آقای حتما میتونی اینی قرار دوتا دو تا کتاب دیگه به گزینه برای کتاب سفر اینه ساری طبیعتا من رو تو باید خیلی خیلی خیلی کار با کل ایران. با ایراد خیلی خیلی زیاد باشه قبول میکنم پایان خوشانه جن. سر صفحه مزخرف نویشته سر صفحه یکی که اصلا نمیخونه گره این اکثر اوقات به جایی نمیرسه حتی اسم خودش رو روی صفحه حتا ننویشته این قراره کی باشه از دو دستگاهتش میتونم بگم پاو مرتک میکنم بکنم بکنم نکاشو بکشه در حالی که اصلا نمیدونم چی دارم اکیه یکی میگه برش تو راه یکی چیه شان آف و سپور اونگه این که اینکه هیچ چیز نیست به خودش زحمت تن نداده آه باش میرم بابا